بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد شهلو من درسة شمائل رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث شمارية سيدة امام الترمذي رحمه الله واسكنه فسيح جناته ميقات حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا حديث جابر هسينجا رضي الله عنه ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء خاصه نشدان در توانشون باشه شخص بیاد مالي کمکی حاجتی داشته باشه و در تمامش باشه رسول الله صلی الله علیه و سلم به کسی بگن نه نمیدم رسول الله علیه الصلاه و السلام هیچ وقت نه به کسی نمیگفت شاید در مقابل سوالی در مقابل سوالی کنجکاوی در امر دین که نمیدونه رسول الله صلی الله علیه و سلم نه شاید بگن نه چون رسول الله صلی الله علیه و سلم عالم غیب نبود همونجا که سوال شدن درباره قیامت که برپا میشه رسول عز و السلام از قیامت نمیدونسن چون حجرئیل اومد زونه بزرگی رسول الله صلی الله علیه و نشانس و سوال پرسید از اسلام و ایمان و احسان و بعد پرسید قیامت کیه میگه نه تو میدونی نه من هیچ کسی جز الله جل و علا نمیدونه همون تک الله جل و علا هم در سوره لقمان به اشاره میکنه قیامت رو هیچ کسی جز الله نمیدونه این یک مثال بود فقط رسول الله صلی الله علیه و آله الله جل و علا از باب خطاب بهش توصیه بهش در قرآن میگه در سوره توبه ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله علیه و سلم مسهلش بر اصحاب و یارانش نه کسی نمی گفت اینکه از باب تعارف از باب اکرام میخواست به همه اکرام بکنه یعنی به همه خوبی بکنه کرم داشت همونطوری که الله جل و در قرآن ازش نقل میکنه حریصٌ علیکم بالمؤمنین روف و رحیم رسول الله علیه و سلم حریص بر مؤمنین حریص شفقت داره چه در امر دینشون چه در امر دنیاشون رسول الله صلی الله علیه حريص بودر إنك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عزيز عليه ما عاندتم خيري براش سخت در معوناتك شما دريد سختيك شما دريد ميك شي دلسو سبودر رسول الله عليه الصلاة والسلام بخاطر الله جل بلا أزباب الشفاقات برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم اگر مدانا السخاص ثاني سواری حملشون بکنی کمکشون بکنی نداری در توانت نیست قلت لا اجد ما احملکم علی بگو سریح باش بگو نمیتونم ندارم چون گفتم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم از کرمش چنین بودن صلی اللہ علیہ وسلم که کسی را رد نکنه این از اخلاقش، از اخلاق رسول الله و السلام از اخلاق والاش خم ببرونه میکشید خم ببرونه میکشید در مقابل سائلی کسی بش رو میزد به قویل امروزی رسول الله علیہ السلام ن سيسدف عن حديث إمام ترمذي رحمه الله وأسكن فسيح جناته ميقويات حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسله عبدالله الله بن عباس رضي الله عنهما رسول الله عليه وسلم سخاوت من مردان روی زمین بوده و خاهدن بود هیچ کسی از لحاظ سخاوت بخشش عطاء کرم نمیتونه مثل رسول عیث و سلام باشه همون طور که رسول الله صلى الله عليه وسلم متقی ترین و کسی متقی تر از رسول الله صلی الله عليه وسلم نخواهد بود چنانچه خودش ایش رسول الله صلی علیه و به اون سه از یارانش میگوید زمانی که یکیشون گفت که من هر روز روزه میگیرم یکیشون گفت هر شب من تهجد میخونم یکیشو گفت که من دیگه با همسرم همخوابی نمیکنم رسول الله صلی الله علیه و در خطاب آنها گفت منم میخوابم منم روزه میگیرم و گای نمیگیرم منم همسرم دارم با همخوابی هم, هم میکنم و بعدم گفتن چی و انا اتقاكم لله منم متقیترین شما هستم رسول الله صلی الله علیه و سخاوت منترین مخلوقی بوده که الله جل وعلا فریده سخاوت فقط به مال نیست سخاوت فقط به سفره نیست سخاوت مندیت به همون لبخند ده مندیت به همون وقته که در اختیار دیگران میذاری حالا میاد ان ما داریم در باب بعدی هرچند که باب حجامته بعضی از مسائل اخلاقی شاد ما مراعاتش نکنیم شاد دقت نکنیم ولی خب ما از لابلای حادیث رسول الله صلی الله میتونیم خیلی از مسائل رو برداشت بکنیم که خلاف مروت خلاف اون اخلاق بالایی هست که الله جل و علیه از ما میخواد که در مقابل هم دیگر داشته باشیم. رسول الله صلی اللہ علیه سلم بخشش قابل قیاس و بخشش پادشاه ها نبود رسول الله صلی اللہ علیه وسلم چیزی برای خودش نگه نمیداشت علیه الصلاة والسلام چنانچه قبلا داشتیم در حدیث که رسول الله صلی الله علیه وسلم عمومی آیشه بهش خبر بده رضی الله عنه که زنی میاد تو خونه رسول الله علیه سلطه والسلام چیزی اون زن میگیره یکی به این دخترش میگه یکی به این دختر یکیشو میخواسته خودش بخوره دو تا دختراشون دستشون دراز میکنن سری اون یکی رو خورت میدن دانشو میندازن که دومی رام میگیرن دست مادرشون هر دو تا با هم میخوان سبقت بگیرن اون زنه خرمای خودشو نصف میکنه نصفه نصف به این نبود سه دونه خرما چرا نه اینکه نداشت. رسول الله عث وتر سلام در حجۃ الوداع صد تا شتر قربانی کرده نه اینکه بیمال بود چنانچه درسنا ترمذی داریم صد تا بزم داشت ولی خب به عنوان سرمایه بود و از شیرش از گوشه استفاده می‌کنه زمانی که میذایید چنانچه در سنن ترمذی داریم رسول الله علیه ست و سلم مهمونی براش میاد بچوپانش میاد میگه که خب یکی از بوزامون زاییده میگه خب یکی دیگه هم ذبح کن برامو مهموناش شرمونده میشن. رسول الله علیه الصلاه و السلام بهنها میگه ان نه غنم و مئه تا گوزری كل ما ولادت هرگاه یکی جدید به دنیا اومد، ببره ما کنه اونجا و كما قال عليه الصلاه والسلام یکی دیگه سر می‌ذاریم، کرمش نمیخواد اونا در حرج بیفتن، احساس شرمندگی بکنن. از یه طرف احرامشون کرده، براشون زبر کرده، سرزده حیبون از یه طرف دیگر هم دلجوییشون می‌کنه. این عادت ما هست، این غذای ما خودمون هست. نهی که نه که ما تکلف کردیم، ما رفتیم اینقدر خرج کردیم، برا تو رفتیم بود سرزدهیم، ولی خیلی این توقعه رو دارن. اگر اومدنم یکی بهت دادن سر سفرت گذاشت میخواد دوتا هم تو تحویلشون بدی آه ما اومدیم اکرامشون کردیم برایشون بز سر زدن رفتیم میدونه مرغم به بهمون ندادن اگر انسان اکرام میکنه بخشش میکنه لله بکنه نه اینکه دیگه روی طرف بده بگه آه ما فلان روز برات فلان کار کرد این منته. رسول الله و السلام میفرمان لا يدخل الجنة منان لا يدخل الجنة ورد بهش نمیشه کسی که مننت بذاره مننت نزار کاری که کردی لله انجام بده نه به خاطر اینکه از تشکر بشه و بخواد پاداشی بهت بده کارت لله باشه برای الله جل و علا انجام بده اخلاص عدم ریاکاری اخلاص من اومدم مهمون اومده برام فلان کارو کردم براش چه جلو و خودش بگی اش بکنی و چه جلوه کسی دیگه بگی و اینو ابراز بکنی اینا همه خلاف ادب خلاف کرمه رسول الله صلی الله علیه و سلم بر این اخلاق نبودن کان رسول الله صلی اجودن ناس. اجودن ناس. رسول الله علیه و سلم اجود الناس اجود الناس سخاوتمندترین مردون بود رسول عز و حسب بل خیر در دادن و بخشش رسول الله علیه و وسلم گرسنه نمیخوابیدن ولی نمیذاشتن که همسایش گرسنه بمونه اگر غذای میپخت نه اینکه فقط به در همسای مسلمونش بده حتی به یهودیش هم میداد همون یهودی که دشمن رسول الله صلی الله علیه و سلم بود تهد و دین اومده برای ایجاد محبت نه ایجاد بغض چرا غیبت حرام شده غیبت ابزار ابلیسی هست شیطانی هست در تخریب کردن در خراب کردن در فساد کردن تو زمانی که میای پشت سریه که حرف میزنی میخوای چی آبروشو ببری میخوای کسی حرفشو نشنوه و الی آخر کار ابلیسیه چون این کار ابلیس سنگینه و اون حاجت نفسی ما هم از اون غرور و از اون کبرم در ما هست از اون خودبینی میدونه ابلیس از این حس ما سوء استفاده میکنه میگه ها فلان اینا کن چطور نگاه کرد فلان چکار چی گفت تو اون حس انتقام به دست میده یا اون حس خودبرتری به دست میده اینجا هست که تو میلغزه را نگاه کنید رسول الله عز و سلام برای اینکه قضیه جبران بشه، پانسمان بشه. ما اونجا که پابو لغزیده، شیطان نتونه ازش سو استفاده بکنه. رسول الله عز و سلام در مورد اصلاح ذات البین چی میگه؟ میدونید رسول اصلا خطابش، یک شخص روزه میگیره، شب تهجد بخونه همه این کارا رو انجام بده از عبادت‌ها. چقدر عجب درش ثواب داره. میدونی چی با این موازی میشه؟ اسلوحه زلوی یک حرکت زدی خلاف حرکت ابلیس شیطان غرورت زبح کردی تنچه ابراهیم هم در عیسیعه و سلام اسماعیل را زبح بکنه قربانی کردنه یه جایی انسان باید قربانی بکنه غرورش کبرش محبتش الله جل و میخواد ابراهیم خالصانه برای خودش باشه بنده خودش باشه حب بچهش در دلش غلبه نکنه تو زبح کن غرورتن باید زبحش بکنی قربانیش بکنین کبرت به زبح شو گن سالی شو فلان روز فلان حرف بهت زده فلان چیز پشت سرت غیبتت کرده تهمت به زده ببخش هر خطایی کرده الا اینکه اون خطا در دین باشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم خشم می‌شد ناراحت می‌شد برای دین الله جل و علا ولی اینکه ما غیبت بکنیم پیش این و اون این در اون در نه ما غیبت چارچوب داشتیم براش غیبت کجا جایش داده پیش حاکمی پیش قاضی پیش کسی که برشی داشته باشه بتونه اصلاح بکنه نصیحتی بکنه نه اینکه ریپون برداری پیش اینو پیش اون بری بدگویی بکنی و بیای خبرچینی بکنی چون الان تو داری جای پای ابلیس داری پا میذاری تو داری افساد میکنی خراب میکنی بیا اون افساد را ذبحش کن قربانی کن در ذات خودش در ذات خودت قربانیش کن برای الله جل و علا. یک جا هست میگم باید الا خصوصا مهم میشه برای رمضان دیگه عید داریم عید فرصتیه برای این اصلاح اصلاح ذات البین قربانی کردن این غرور این کبر تو خودت نمیدونی ها همون غیبتت حس ابلیسیه هست، شروری که در تو میاد جوش میزنه خروش میکنه حس انتقام جویی جای جای حس خود برتری تو نمیدونی خودت ولی اون اون غیبته پشت سر شخصی داره حرف میزنی خیلی برنامه هست برات شیده ابلیس پشت سر همین غیبت تو خودت نمیدونی بی اصلاح کن به جای افتصااد بهجای اون غیبته بنظر خوبی بکار. به کار و هدیه هم یکی از اون راه ها هست بزار راه هست همسایه هست نمیشه ازش بدی سر سرنظره خش بچهاش ماشینی پارک کنه و نمیدونم فلانی بکنه شبی سر سده را بنداازه عروسی داشته باشه اعضایی داشته باشه. شیطان حریسه بر همون که همون لحظه ای که این بوق زده تا از خواب بپری، این سبب کینه بشه کودت بشه بیای با اخمی جلو و روش بیستی. به خاطر اینکه پیشگیری میکنه شرجله و چی گذاشته ااعتاد دو هدیه بده. الجار و ثمت دار رسول الله صلی اللہ علیه وسلم می فرمایا. اول همسایت بعد خودت و اینو در زندگی رسول الله صلی اللہ علیه وسلم ما می خودش گرست نمی خوابید ولی همسایتش باید سیر باشد اینا همه اصلاح هست راه های اصلاح خیلی زیاده را ما زیاد داشتیم در اخلاق رسول الله علیه الصلاه و السلام از اساس رسول الله علیه الصلاه و السلام ثروتمند نبود تاجر نبود از اساسش چرا من نبود رسول الله صلی الله علیه و السلام جز پادشاهان نبود چون ایمان ارزش نه پیدا نمی از صحابه رسول الله علیه الصلاه و السلام به اندازه‌ای که داشت از بیت المالم چیز اگر در اختیارش گذاشته میشد رسول الله صلی الله علیه و السلام برای خودش نگاه نمی داشت رسول الله علیه الصلاه و السلام انفاق می کرد به خاطر شما در مدینه می بینید طیف منافقین دارید که به خاطر اون مال چون دیگه غزوات شده بود دیگه خیرات اومده بود زیاد به بیت المال و در اختیار رسول الله افتاده بود از اون اموال اشخاصی به تمع مال اومدن نزد رسول الله صلی الله نفاق اون اونا رو کشید ولی رسول عز و جل ان سالی که در دعوتش بودن نه بهترین خونه نه بهترین جا و مسکن نه بهترین وسایل بلکه چنانچه ما در حدیث داشتید رسول الله صلی الله علیه میره پیش جابر با الاغ سوار الاغ میشه میتونست اسب بگیره میتونست و بهترین شطورم سوار بشه بره ولی که با وجود رسول عز و سلام با اون مکاناتش نداشت منزلتی سراغ اولاغ جدا مهمونی می‌خواست بره با اولاغ میرفت رسول عز و اوصم دوست نداشت کسی مؤمن بشه بخاطر مال بخاطر پول بخاطر خاطر زکات به خاطر صدقه می‌خواست اگر کسی مؤمن میشه بخاطر الله جل و علا مؤمن بشی نه به خاطر دنیا منافقین یکی از صفاتش الله جل وعلا قرآن نقل می‌کنه میگه و منهم میلزک من الصدقات رسول الله صلی الله علیه و السلام زکات اگر کسی بهش میورد الله جل وعلا میگه منافقين در صدق دادنت به طعنه میزنن فئن اعطوا منها رضوا بدی بهشون از مال ازت راضي میشن فئن اعطوا وئن لم يعطوا منها اذا هم يسخطون اگر از اون مال صدقه نروحد میشه به دل میگیرن چون ایمانشون برای چی بوده برای مال دنیا بوده برای حب دنیا بوده رسول الله علیه و السلام دوست نداشت که کسی به تمع مال بیاد مسلمان بشه و الله هم جل والا سوره نازل کرده سوره توبه به خاطر این منافقین غیر از اون سوره منافقین که بحث منافقین رو مطرح میکنه و بحث اینکه حب دنیا درشون غلبه میکنه رسول الله علیه و چنانچه قبل در هم در همین شمایل یاد شد رسول الله علیه و حتی اون کسی که پولدار بودم اگر در اختیارش مال قرار میگرفت بهشون میداد زمانه که در فتح مکه درهای خیر باز شد و همچنین حنین صحابه قبل از برگشتشون به مدینه قصد در حنین دو دسته شدن در توزیع اموال اکرامی که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب و یارام میکرد یه طرف به اون مشرکین تازه مسلمان هم طرف دیگر رسول الله علیہ, علیہ سلام به سران قرش داد ولی به انصار نداد کمتر کمتر با ادب اومدن نظر رسول الله صلی الله علیه و سلم چی شده؟ شاید ما کاری کردیم یعنی. اشارت چشش افتاده باشیم. خطایی از ما سر زده. با ادب اومدن. چی شده؟ همه رودادی به اونا ولی سهم ما چی شد؟ رسول اصلا ناراحت میشه از اینکه یعنی این قضیه پیش اومده. و اینا ناراحتن میاد دلجوییشون بکنه. میاد به اونا میگه دوست ندارید اینها که تازه‌مسلمونن، مؤلفه هم بودن دیگه؟ از ما به تعلیف قلبشون اینکه برای ایمانشون اسلامشون بمونن اصلا سلام انفاق کرده بود بهشون داده بود اکرامشون کرده بود به صحابهش گفت خدوان الله علیه مجمعی انصار دیست ندارید اینها با مال دنیا برن ولی من با شما بیام من با شما باشم من و شما داشته بشید همه گریه کردن حب اخراتو داشتن اینها این اینچنين پرورش شده بودند تربیت شده بودن زیر دست رسول الله صلی الله علیه و سلام حب اخرت درشون بود حب رسول الله صلی علیه و سلام در درشون بود از خوشحالی پرواز میکردند به قاله امروزی رسول الله صلی الله علیه و سلام میخواد باهاشون بره به مدینه چی میخواد مال دنیا بازار ببرن بازار ببرم مال دنیا ولی خب شما در همون قضیه لا بلا ببینید دلخویش سری طویمی میاد با کمان کمال گستاخی بی ادبی جلو رسول الله صلی الله علیه و سلام نمیشناسه از کرمش از بخششش از عدلش نمیشناسه تازه مسلمونه خودش شيفتهس، <متحدث> خد بابره، كبره، ميجي يا محمد، نه رسول الله، بيأدبها، شلون شد صحيح مسلم داري ميجي إعدل يا محمد، ما نشودي مزيك يعني الصحابين ما رسول الله صل الله وسلم، بق اسمش تدابزنا، بق رسول الله، بلي إيم بق يا محمد، إعدل، حد ولا تكون، رسول الله الله أي أمنون الله على أهل السموات والأراضين ولا تأمنوني. الله من عاملی آسمان و زمین بشمره شما من نش نصیت و من یعدل اینلا عدل اگر من عدالت نکنم کی عدالت میکنه تا کرد مال دنیا مال دنیا سه مشکل تو خارجی بیشی مال دنیا سه مشکل تو منافق بیشی پارسال به زکات دادن امسال به ندادن داد و ویداد میکنی امسال به من زکات ندادن صدقه ندادن نفاق همین مال دنیا سه مشکل تو خارجی بیشی تکام چاه نفت دارن فلانن. اونجا فلسطین مردم مظلومن این چاهای رو فقط دارن میسوزونن برای خودشون و تو قصر و تو فلان زندگی میکنن و الی آخر میاد طعنه میزنه به حکام تو تکفیر میفته شیطان اگیدی نمیاد بهت بگه که آقا بلاغا این فلان حاکمه که فلان کشور کافر نه برات مقدمه چینی میکنه یک فتنه ای میشه یک امتحانی میشه یک ابتلای میشه والله حمجله علا این فتنه ها را گذاشته میخواد تو رو ببینه در اون فتنه چه کار میکنین نه تو به دام تکفیر میوفتی نه نمیوفتی؟ از اینجا شروع میشه از این حس شروع میشه. ها اینها چه های نفت دارن خرج خودشون میکنن خرج مسلمان ها نمیکنن مسلمان ها دارن کشته میشن. حس زل خ زیره تو زاتت میاد ذات انسانه نه من بری هستم نه شما. ذوق س تعمی هم کسی از غیر از بنی آدم نبود یکی از بنی بشر و بنی آدم مثل خودمون بود این حس میاد بللی این حس با ضبط من بشه. شما ادبه انصار نگاه بکنید با این بیادبی خارجی این گستاخه این بی ادبه این بی تربیت، اونا تربیت شدن ده سال که رسول الله صلی الله علیه و آله شونه نشسته, نشسته داره باشون غیر از اون مهاجرینی که از قبل بودن 13 سال در مکه اینا بوی ایمانو بردن بوی ایمان با فقر کشیدن میدونن مال دنیا بی ارزشه ارزش تو ایمان، تو دین، تو نمازته تو اطاعته اینا ارزشو فهمیدن تو چی است تربیت شده رو این به خاطر همین رسول الله صلی الله براش مال دنیا مهم نیست شب و مد دیگه نیست همون شبش توزی میکرد شب اومده صبح نیست سه ما میرفت آتش بکنه رسول الله صلی الله علیه وسلم بلند بلن نمیشود خودش گرسنه میخوابید ولی همسایش نمیزاش گرسنه بخوابن همش هم گفتن به خاطر اصلاح حضرت البی همش به خاطر اینکه دیگران درس عبرت بگیرن بدونن بفهمن از حقیقت این دنیا پس این دنیا همیشه جلوه چششون باشه دنیا ملعونه دنیا ملعونه دنیا پس بال پشه ابن از الله جل ارزش نداره به خاطر همین ما میبینیم که رسول الله علیه و این بال پشه این دنیایی که نزد الله پس که نابودان میشه اینجوری رسول الله صلی علیه و سلام بخشش میکنه و در راه خیر که نزد الله مضاعف میشه مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کماثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مائة حبه والله یضاعف لمن یشاء رسول الله علیه و سلام دنبال اینه یک دونه کاشته یک درهم داده 700 درهم ازش بگیره میدونه این دنیا رفتنیه مهم براش اون دنیا است اونجا چی برداشت بکنه که مثلا حبه یک دونه الله جل و العالمی کاش دی هفت شاخه بود میده هر شاخه هم سه تا جوانه روشه هفت تا برداشت میکنه یک جوانه رسول الله صلی الله علیه و آله این معانی که قرآن می‌خون در عملش بود با خطر همین امین عایشه رضی الله علیه کانه خلق او قرآن اخلاق رسول صلی الله علیه و آله قرآن بود یکیشون یه که نکرامش خودش گرسنه میخوابید ولی همسرش گرسنه نمیخوابید نمیذاش که بخوابه رسول الله علیه و سلم کمال دلجویی دلسوزی همدردی اینها رو در رسول الله علیه و سلم ما میبینیم و کان اجود ما يكون في شهر رمضان رمضان یک خصوصیت خاصی داره در انفاق کردن حسین انسان خودش هم نمیخوره از غذا خودش میتوره بزنه با نخوردنش به دیگران بده ولی خب ما ها برای اینکه تربیت بشیم روی انفاق ابن عباس رضی الله عنهما چنین داره به ایمان میگه در بحث انفاق کردن و در بحث خیر کردن خصوصا در رمضان الگوی رسول الله علیه و وسلم باشه رسول الله علیه و هر کسی مالی بهش میورد از سمرات درختانش نخلش یا مال خودش خصوصا در رمضان دست پای شیطان بسته شده است دیگه حب ایمان حب دینش بیشتر شده برخلاف غیر رمضان رسول الله صلی الله علیه و سلام هر چی میوردن در میداد به این اون در رمضان بیشتر میدیدید که رسول الله علیه و سلام دست به خیر داشته باشن یک از علتاش هم اینه دست پای شیطان بسته شده و همه هم دست به دست هم دیگر دادن از زمان رسول الله علیه و سلام برای خیر کردن یک فرصتیه این رمضان برای انسان که اون بخل خودشو درمان بکنه صفت مال دوستی صفت دنیا دوستی نگید که ما دنیا دوست و مال دوست نیستیم الله جل و از نفس ما در قرآن داره میگه و حبون المال حبا جما حبون المال، حبون المال، مال دنیا قید وزیزه، خوش مزه است، زرق و برق داره حبا جمع خیلی، کشت مرده مالید الله تعریف نمیکنه از اون گرگ درونمون میگه گرگ درونمون ما، گرگ مال دوستیمون. رمضان فرصتی برای اینکه این گرگ نفست، این گُرگی که در درون این شیطانی که بر قلبتو چیره شده برای حب مال، حب دنیا، این گرگ رو مهارش بکنی، رامش بکنی بر خودت. رسول الله عز و سلام چنانچه در حدیث شریف دیگه ما "ماد ایبان جاعان بیافسد علی غنم." ابن رجب در شرح این حدیث کتابی داره. دو تا گُرگ گرسنه، دیبان جاعان، تشبیهش میکنه رسول عز و سلام به اون حس درونی ایما، به عنوان یک گُرگ دیدید گرگ اگر در گلی بیفته چطور فساد میکنه؟ یه دونه گسفند بسشا ست تا گوسفند درو میکنه میزنه میکشه یه دونه گوسفند کفایتش میکرده میگه دیدید دوتا تا اگر تو گله بیفتن چه کار میکنن همه رو میکشن؟ حب به انسان برای جاه طلبی و مال طلبی مثل این دو تا گورگه گرگ جا و مقام و گرگ مال و منال اونجا جا و مقامه اینجا مال و مناله چیکار میکنن این دو تا به جون دینت میوفتن. اون گله را رسول الله صلی تشبیه دینت داره میکنه یعنی دینت تو تشبیه گله داره میکنه میگه مثال داره میزنه رسول الله صلی چطور دو تا گرگ گرسنه گله را نابود میکنن حب مال و حب جا و مقام در تو هم بر سر دینت میافتند و دینت هم نابود میکنن همونطور که دوتا گرگ گلیر نابود میکنه جاه ماله خرابت میکنه تو نمیدونی از حس خودت کور که درد درونته یک از راهای درمانش رمضان دست در پای شیطان بسته شده است تو روی به قران اون حس ایمانی در تو میاد سوره بقره خصوصا میخونی سوره بقره از اول تا آخر سوره انفاقه بخون با تدبر بخون ببین الله چی ازت خواسته این حس رو در خودت ورورش بدی از اون حس بخل نفاق منافقین نجات پیدا بکنی منافقین بخیل بودن حریص بودن این حس نفاق این حس بدی که الله جل و علا میگه واتحبون این حس بد مال دوسی در تو درمان بشه حس آخرت درد بیاد، حس بهش برین در دل دلت بیاد که اونجا با کی باشی، رفیق کی باشی، جوار کی باشی، همسایه کی باشی فی جبریلو فیعرض عليه القرآن، جبریل عليه الصلاة والسلام. در رمضان می مهم نازل رسول الله صلی الله علیه و وسلم برای اینکه رسول الله صلی الله علیه دور بکنه فعیرض عليه صلی الله علیه و وسلم قران عرضه میکرد حفظش از حبس قران دور میکرد رسول الله وسلم خصوصا برای حفاظ ماه رمضان ماه مهمی برای دور حفظ و مراجعه قران خصوصا در نماز و نماز تهجد فعل القیه جبریل كان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة خب جبریل ماده بر مناقشه رسول الله صلی علیه و سلم قرآن هم رسول علیه و سلم داره باش دور میکنه رسول الله صلی علیه و سلم در اون زمانی که قرآن داره میخونه دور میکنه انگار که داره بادی میوزه از اون باد خیر از اون باد خوبی نه باد عذاب چون باد به عذاب میاد باد به خشم میاد باطره همین اینجا تشبیه داره میکنه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما از اون سخاوت جود رسول الله صلی الله علیه و سلام زمانی که جبرئیل میومد برای دور کردن قرآن نزد رسول الله صلی الله علیه و سلام برای اینکه رسول دور بکنه یعنی علیه و انگار که بادی وزیده کل مال رسول الله صلی الله علیه و سلام رو جمع کرده برده به دیگران داده براش مهم نیست هرچی مال اومده این از فواید قرآن البته که از درس ها که می تونیم بگیریم قرآن خوندن با قرآن نشستن تفسیر قرآن خوندن تعلقات دنیوی رو در درون ما درمان میکنه و اون حس مال دوستی را حس دنیا دوستی را در قلب ما پانسمانش میکنه معتدلش میکنه نهی انسان از مال دنیا بهره ای نبره بهره ببر ولی که این بر تو حبش غلبه نکنه حب ما رو در درون خود قربانی کن و چیزی که میتونه تو را به اینجا برسونه به این حس ایمانی قرآنه و نشستنه با قرآن تلاوتش و تدبرش. 354مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا قتیبه بن سعید قال اخبرنا جعفر بن سلیمان عن ثابت ان انس بن مالک رضی الله عن قال كان النبي صلی الله عليه وسلم لا يدخر شیئا لغد این امام ترمذی حدیث صحیحه این امام ترمذی رحمه الله روایت میکنه از حدیث انس بن مالک رضی الله عن رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی ب... ادخار نمیکرد چیزی نمیگذاشت برای فرداش چیزی برای فرداش بس انداز نمیکرد نمیگذاشت نه از خوردنی نه از مال دنیا هرچند که رسول الله علیه و السلام در حادث دیگه داریم که خانواده خودش رو گرسنه رها نمی‌کرد. یعنی این نبود که رسول الله علیه و السلام برای خودش سرمایه نداشته باشه از اون مال پسنداز نه، داشتن. چنانچه گفتیم 100 تا شتور، 100 غیر از اون نخلستانی که از غنیمت رسول الله صلی الله علیه و وسلم بهش رسیدی، بود چنانچه ده صحیح داریم ان نبی صلی الله علیه و وسلم كان يبيع نخله بني النظير ويحبس لاهل قوت درختای نخلش از بنی نزیر بود که یهود بودند که اومدن خیانت کردن و اینا رسول الله صلی الله علیه و سلم اون مالی که از اونجا گیرش میومد میفروخت و قسمت دیگر را برای خانواده خودش بسانداز نگه می می‌داشت از اون خرما قوت یک سالشون بود خرما یک بار در سال سمر میده به اندازه یک سالشون نگه می داشت براش حالا هرچند که در اون لا بلا شاید کموکاسی بشه شاید ولی نکنید. بحث به فک بودن خانواده است اینطوری هم نیست که تو این بخششه سبب بشه که برای خود چیز رها نکنی نه ولا تبسطها کل البسط الله جل و علا در قرآن میگه دیگه زیادی بازش نکن میخوای انفاق کن بکن ولی اول خانوادهت برای خانواده‌اش هم رسول الله صلی الله علیه و سلم چه کار می‌کرد؟ قوت سالشون هم پسنداز به فکر خانوادهش بود نگاه می‌داشت براشون قوت یک سالش و مازاد بر اون رو انفاق می‌کرد مازاد بر اون رو اکرام می‌کرد به دیگران از اون قناعی میگه حسین الله علیه بر رسول الله علیه و سلم میومد انسان سرمایه داشته باشه انسان کار بکنه ولی که مازاد بر اون درها الله جل وعلا خير كونه بفكرة أخرى تشبش سيسرف عن جواب حديث أمام الترمذي رحمه الله يقول يا تحدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة المديني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا فتبسم الرسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجه البشر لقول الأنصاري ثم قال بهذا أمرت حديث زيفة تسنادش مصاب نبي على الخماز مجولة حديث زيفة ما تنشع منك يا عمر الخطاب یه شخصی اومد نزر رسول الله صلی علیه و وسلم و خاص مالی بهش بده رسول الله صلی اللہ علیہ گفت که ندارم ولی خب برو هر جای چیزی لازم داری برو خرید کن من حساب میکنم فیلجه عنی شئی اون قضای تو برو تو بگیر از اون فلا مغازه هر جایی میخوای خرید کن من برات عداش میکنم پرداختش میکنم فقال عمر عمر رضی علیه و سلم قطع اطایته بیش دادی اون چیزی که در توانته فما کلفک الله ما لا تقدر عليه اون چیزی که در توانه نیست چرا خودتو مکلف می‌کنی رسول الله صلی الله علیه و آله عمر یه شخص از انسور اونجا ایستاده میشنو این حرفو به رسول الله صلی الله علیه و میگه میگه یا رسول انفاق کن و نترس از اون که صاحب عرش از الله جل و این که مال تو کم بکنه مالت کم نمیشه رسول الله سلام لاقندمی و اون سرور و خوشحالی میگه در صورت الرسول اساساً واضح شد در مقابل اون سخن اون انصاری بعد میفرماین به این جنین امری دستور داده شده حدی ضعیفه ولی خب دو تا مسئله هست که من در لابه گفتم لاب بازم از بابه یادآوری میگم یک لا تبسوتا کل لباس. الله جل وعلا دست زیادی واسه نکون میخواد انفاق کن بکن ولی اول خانم عادت انفاق کن در حد توان این امر الله جل اون چیزی که توانت میرسه انفاق میکنی بدونم دو بدون الله جل وعلا در قران میگه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه فهو الله جل وعلا فهو يخلفه الله خلفش جایگزینش بهت میده و هو خير الرازقين بهتن روزیرا الله جل وعلا میده رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمای ما نقصت مالو من صدقه هیچ وقت با صدقه داده مال کم نمیشه این مالی که تو داری اندوخته داری نک قرض بکنی و در قرض بدهی بندازی و بدونیم در اون موقعی ما انفاق میگنین الله جل وعلا فرشتگانی برای ما گذاشته برای ما دعا بکنن در مقابل انفاق این فرشتگانی بخاطر مالك ما انفاق ميكوني بخارجش ميكوني ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ما لا كان صوب نيس روز نيس كبياد مقر الله جل وعده تفرشتهم في رسم يلزلاني فيقول أحدهما يكشون ميقه اللهم أعطي منفقا خلافا هر کسی ایدادات الله بالله خلافش بهش بده ع منفققا خلفهه رگزینش بهش بده و یا قول اللهم مععقیی مسیکن تلفه اون کسی که مالشو نگهنداه بارله مالش رو تلفکن. مال و خودم خود منطلف میکنین با بخل مال اندوخته زیاد نمیشه مثال من میذام اونایی کهسهخصن رو باخاری میکنن تو بانک ها پولش رو میذارن بینیت که دارن سرمایهگذاری میکنن فکر میکنن مالشو داره اضافه میشهه ان انگار که بانک مثلا سود بشون میده یک درسدی بهشون میدم بالاخره ها این طرف یک میلیارد گذاشته فکر میکنه سال بعد مالش شده یک میلیارد و 3000 نمی‌دونه این بنده خدا امسال این یک میلیارده یک کلی طلا میشه سال بعد 100 گرم طلا هم بد نمیدان با یک میلیارده میلیارد نمی‌دونه گذاری نمیکنه بخیل از درس این که شاید کسی کار بکنه براش شاید حقوقی بگیره شاید نه با پولش کار میکنه نه زکات هم مال میده غیر از اون که در حرام افتاده مخلشا صرف شده که اون رو باخاری بکنه ارزش مالش هم داره کمتر میشه نه بیشتر انسانه زمانی که حب دنیا بر میشه شیطان فریبش میده به طوری که خودش هم ندونه در حرام میفته بدونه که خودش هم حس بکنه شرع چه را گفته زکات بده در مقابل سرمایه مال تو کنز نکن نگه ندار برای چی یک حب دنیا بر دلت غلبه نکنه اون چیزی که الله جل علا در قرآن میگه حس بدی حس منافقینه حس خوارج تبدیل دلت درمان بشه یک دو اشتغال زایی بشه کار بشه تو زمانی که اشتغال زایی میکنی صد تا ماشین بخره بذار کرایه‌کشی بکن مثلا به کشتی بخرب کار کن ده نفر بیکار بگیتون کشیتون لنج تو هر چیزی که داری زکاتی نداری الا اندوختهت بگی که اندوخته کردی چرا زکات نداری چون ده نفر دارن از تو میخورن از خیرتو دارن بهره میبرن هدف شرع اینه که تو دست به اشتغال بزنی دست به کار بزنی و دست کسانی دیگه رو به کار بگیری نه اینکه مال رو برای خود اندوخته بکنی سي من حديث امام الترمذي رحمه الله مقوليات حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناة من رطب وأجر زغب فاعطاني من كفيه حليا وذهب خلينا حديث قابلنا ياتشون زيفوت ويا رضي الله مقولين ماذا نزل صلى الله عليه وسلم بصيني زرفيه خرماه عن خيار بعد به جای اون برام یک مطلادیات که حدیثی ضعیف بود 357مین حدیث امام ترمذی رحم الله مجید حدثنا علي بن خشرم و واحد قالوا حدثنا عیسی بن يونس عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشة رضی الله عنها ان النبي صلی الله علیه وسلم كان يقبل الهديه و عليها حدیث سید البخاریه حدیث امه عائشه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه و هدیه رو قبول میکرد و یثیب عليها و در مقابل اون بدلی میداد جایگزینش بهش اگر هم نداشت دعای خیری براش میکرد حالا خصوصا زمانی که رسول الله صلی الله علیه و زکات رو پیشش می آوردن صلوات میفرستاد بر اونها دعای خیر میکردن برای اونها دعای خیر میکردن حداقلش حد اون کسی که کس به انسان هدیه میده از بابت تشکر حداقلش حد بگه جزاك الله خیره این حداقل حد چیزی که میتونه بهش بربگردونه از اون دعای خیر ادب اخلاقه، از دعای خیرمون حداقل حد دوست رفیق حتی پدر و مادره. خصن اون فرزندی که در خونه همیشه طلب کار است پدر و مادرش. پدرم بهم نکرد نداد موتور نخرید ماشین نخرید فلان نخرید این اینو میخوام اونو میخوام هیچ وقت اون روی خوش پدر ازش نمیبینه که بگه اقا پدر زحمت کشیدی برام جزاک الله کلخر بزرگم کردی. زبان شکر بادیاد بدیم به بچه هامون. در تا امولمون به با مردم زمانی که این زبان شکر از ما اومد بان کسی بهمون خوبی میکنه. کاری برای ما انجام میده. همون ماشینه کرایه گرفتی ها. کرایش درست داری میدی. велиکن باامور روی خوش بگوزید جزاك الله خیر. الله جزاك خیرت بده الله در خیر برات باز بکنه دای خیركم براش بزار بچه هات یاد بگیرن بذار همسرت یاد بگیره بزار دیگران یاد بگیرن بذار همو سر سفره نشستی که بارها من تاکید کردم خانمت زحمت کشیدی برات سفره گذاشته جزاك الله خير الله جزاك خيرات بده مزهونم خود بگو جزا. الله جزاك خيرات بده الله در خیر برات باز بکنه الله خیر جلو برود بذاره الله خیر بچه هات رابط بد بده غیر بچه‌ها تا به خود برمیگردا، برای بو بچه‌ی خود دعا میکنه یه چیزی میگه نه خانم خوش بشه، ب... برایت زحمت کشیده. اون بچه‌ دستو یاد میگیره، زبان شکر یاد میگیره. اولن شکرتم لازیدنکم. خب این شخص میگه من که شکر از خانم هم کردم که از خدا نکردم. نه، بدون رسول خدا (ص) میفرماین: من لم یشکر الناس لم یشکر الله. کسی که شکر از مردم نمیکنه شکر الله را نداره. کسی که سپاس مردم را نداره، تشکر از مردم نمیکنه خیرشونو خیرشون رو به جا نمیاره، از باب اول خیر الله هم به جا نمیاره. زبانش مشاکر باشه. و بدونیم شک خیر میاره برامون آخرین باب امروزمون چلو نهمین باب باب ما جاء فی حیاء رسول الله صلی الله علیه و سلم دو تا حدیث بشتر نداریم یکی شو صحیح و یکی هم زیف در این باب ولی قبل از اینکه وارد در بشیم حیا چیه است؟ حیا شرم، خجالت نیست، شرم. بزرگترین نوع حیا که رسول الله صلی الله علیه و آله زمانه کی میفرماند الایمان بضعه و 70 شعبه. افتاد عندي شعبه در ایمان. شادته این بالاترین نشه و امانتت الاذ عن الطريق، صدقه. خورخ و شکم جنب بکنی صدقه هست که از ایمانته. والحیا شعبه من شعب ایمان حیا هم یک شعبه از ایمان‌ها. یک ای که تو میتونی ایمان تو باش زیاد بکنی. حیا ایمان تو زیاد میکنه خب حیا چی که ایمان را زیاد میکنه حیا اولیش از الله جل و علا. حیا از الله جل و نون داده آبت داده شر بکنی ازش جلوش درست بیسی درست وضو بگیری درست نمازتا عدا بکنی رو درست بخونی حرفشو درست بخونی درست سلوت بکنی درست یاد بگیری بفهمی حیا هست الله را بیاد داشتن شرم ازش کردن تو را آفرید مننت چشم و گوش بهداد منت دل و جان بهداد و پا بهداد داری میری میای آی شرم کن اگر برای الله نیستی مثل آل داوودی که الله جل جلاله مدحشون میکنه که عملو آل داوود اشکررا دا مثل آل داوود همیشه در شکر و سپاس باشید داوود علیه الصلاه و السلام یه جای خاصی در خونه اش گذاشته بود که الله به عنوان محراب یاد میکنه نه محراب اینا نه نه محراب منظور اتاق یک اتاق برای عبادت خلوتش دور از زن و بشینه برای نماز خوندن و یاد الله جل و تسبیح کردن بشینید نماز بخون نماز بخون لله از تهجد از نمازهای قبلی بعدیه و غیر دحا نماز بلاتنین وجهی شکر الله جل و علیه این حیاء هست الله بهت داده تو از شرب داری اگر براش نیسی از شرب بکنی شرب بکنی زمانی که شیطان تو رو وسوسه میکنه که تو رو وادار به گناه بکنه بگی سبحان الله سخفر الله حیا هست شرب بکنی از الله جل و علیه نعمت چشم بهت داده بعد تو بری با این چش نگاه نمحرم بکنی شرب بکنی از الله جل و علیه این درجه الله ان تعبدالله این چیزی از که الله جل وعلا ازمه خاصیه الله در قرآن هی امیگه و الله يحبب المحسنی این درجه احسانه این درجه ای که الله دوستشون داره کسانی که الله دوستشون داره حیات رب دوسیبه الله جل وعلا می رسوله قبلن امیت شد که الله جل وعلا فرشتگانش را می‌خواهد با اون پرونده اعمال خصوصا زهر که رسول الله صلی الله علیه وسلم چار رکن نماز می‌خونه قبلی ظهر می‌فرمودن که چی در این وقت اعمال انسان بر الله عرضه میشه دوست دارم اعمالم عرضه بشه من در حال نماز باشم دوشنبه پنجشنبه هم همینه اعمال انسان بالا میره از کی قبول نمیشه الله جل و اعمال کی نمیخواد برش عرضه بشه دو نفری که با هم دیگه قهرن اعمال انسان برای الله عرضه میشه و این مسائل را همه در فرمودی الله جل و در سوره فاتح الیه يصعد الكلم الطيب الیه يصعد الكلم الطيب این کلام ایبه این سخن زیباس والعمل الصالح یرفع عمل الصالحت رفت میشه بالا برده میشه به الله جل و عرضه میشه رسول الله صلی الله میگیم دوست را اعمالم عرضه بشه من در حال نمازم ظهر نمازت برای الله عرضه میشه قبل از تا بین اذان تا نماز عرضه میشه بر الله جل و اعلی شرم کاری از الله جل و مدی استادی برای نمازش خب چی میشه؟ فیئنه الله جبریل الله جل جلاله به جبرئیل صدا میزنه چون حدیث صحیحی داره علیه السلام. فیقول الله یا جبریل انی احب فلانه من فلانا رد السلام. ها کنید فرشتگان اومدن عرضه کردن این شخصی که این اینجوریه تونسه خودشو به درجه احسان برسونه. الله دوستش داره والله يحب المحسنين. اینم درجه احسان رسیده در گناه بیاد الله بوده. شرم کرده از الله جل جلاله. ودر خير كتاهينك هذا الله جل وعلا جبريل كالشريف ترين فرشتقونه شسده ميزانه يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه من فلاني روح دوس ترمام طعم دوسش داشتباش فيحبه جبريل جبريل عليه الصلاة وصوله دوس ميزانه فينادي جبريل أهل السماء فرشتقونه كدير روح سمانه جبريل صداشم ميزانه إن الله يحب فلانا فأحبه الله جل وعلا فلانی رو دوست داره شما هم او رو دوست داشته باشید سپس قبولیت و محبت اون شخص در دل بندگان گذاشته میشه ناکنید بحث محبت و الله جل وعلا است حیات منزلتت بالا میبره حیات سالم میشه که اعمالت برای الله عرضه بشه ولی حیا نداشته باشی اهل گناه و معصیت و بی‌بندوباری و بی‌عفتی و بی‌ادبی و الی آخر باشی به چه روی تو توقع داری که عرضه بشه اعمالت تو دلت میاد اصلا خود با خودت بگو چی رو به الله عرضه بکنی چی تو چی چي خوبی صبح بیدار شدی با نما موبائل سرت mobile نگاه این اون حرف با این اون غیبت فحاشیه و الی آخر چی برات بنویسن فرشتگان الله جل و علا رفته سر مغازه دروغ کلک غیبت خبر چینی تخریب پوش سر این حرف زدن اون حرف زدن نگاه ناموس مردم کردن چی برات بنویسن چی برای پیش الله جل و علا ببرن ذکر استغفار اذکار صبحگاه نگفتی این است که رسول الله صلی و میگه حیا شعبه از حیا این حیا با الله جل و طور مقام ابوالین از الله جل وعلا می رسد و هیچ چیزی مقام بالاتر از اینکه الله رو دوست داشته باشه دیگه نیستا الله دوست داشته باشه محبتت رو داشته باشه حیا دیگر حیا با مردمه شرم کن از مردم در مقابل ناموسشون در مقابل مالشون بعضیا پرون رونن بعضیا گستاخن بعضیا بیرو هستن یعنی عرقی ندارن تو پیشینشون برای خودشو حفظ کنه از بس که میکنن دست درازی میکنن الله بنده گدا رو دوست نداره رسول الله صلی الله علیه دعا یاد میده, میده. میگه ای علی این دعاه رو فراموش نکن. چه دعای این دعاه؟ الله هم کافی به حلال که عن حرامت وغنمی به فضل که عمنسوک. کافی عن حرامت. مرا کفایت کن به حلال ازحرف. این دست به حرام دیگه دراز نشه. بارالله. وغنمی به فضل که عمنسوک. و فضی دخوت مرا کفایت کن. دیگه محتاج کسی نیستم جز خودت. این دعاه باشه همیشه. اینکه تو حاجت ناز مردم باشه دست دراز باشه پیش اونی اون قرض بهم بده. طلب کاره. قرض باشه ندادید دیگه داد و بداد میکنی. الان من خاصم بهم قرض داد. یا نه اساس صدقه و زکات بخوای این امر خوبی نیست پسندیده نیست نزد الله جل و علا این خلاف حیا هست خلاف شرم شرمی که باید یک مؤمن داشته باشه در مقابل برادرش اونها که مسئولتونی نیستن الله جل و علا تو را فریده و مسئولیت رزق روزی تو رو به خودش گذاشته الله رزاق مردم که رزاق نیستن مردم رزق روزی خودشون رو الله تعیین کرده براتون و روزی تو الله تعیین کرده برات از الله بخواه خاطر همین رسول الله صلی در حدیثی دیگر میفرمایند ازهد فی الدنيا يحبك الله ازهد فی الدنيا زود داشته باش در دنیا. یعنی چی؟ این توقع بالا در دنیا نداشته باش. بعضیا ها... دنبال ان اینکه مخ کسی را بزنن بیان یک تجارتی برای خودشون باز بکنن یک مالک کلانی دستشون بیاد یک تجارتی باز بکنن بعد آخر ورش کس میشه گشای زنده نمیخواد یا زیر خطره بدهی و دین میوفته دیگه تو لعقم قسم میخورن چرا این کارو بکنی از تو تام عمال دنیا تو نو وادار به این کار کرده از هدف دنیا کار کوچک کن در حد توانه که بتونی از پسش بر بیای از هدف دنیا زودش تو باش در دنیا تا الله تو را دوستش باشه و الله و از هدف ما فی اید الناس و حبک الناس در مقابل مال مردم هم تو زوحد داشته باشه توقع نداشته باش در مال مردم تا مردم هم دوست داشته باشن و اینم در گرو محبت قبلیه یک قسمتی از مطلب قبلی که ناصر راجب رحمه الله میگه زهد در مال مردم داشته باش توقع نداشته باش چون اینجا تو الان توقعات از الله شده نه از مردم مردم تو رو دوست میداره و الله تو رو هم دوست میداره چون الان دیگه تو توقوع در مال مردم نداری دیگه توقع دنیوی نداری سبب میشه الله تو رو دوست داشته باشه زمانی که الله تو رو دوست میداره مردم هم تو رو هم دوست خواهند داشت پاداش پاداش دنیاوی حیا پاداش دنیاوی؟ حیا حیا خیر میاره الله نگاه مالت نمیکنه الله نگاه ثروت کسی نمیکنه. الله نگاه لباس کسی نمیکنه نگاه قلب میکنه. کدام قلب الله وابسطره کدام قلب الله را ذاق خودش میدونه. کدام قلب وابسته به الله و روزش از الله میخواه الله این قلب میخوادا قلب خالص میخوادا قلب پاک برای خودش میخواد نه قلب با به دنیا و تم دنیا و حب دنیا قلب قلب تو پاک کن از تعلقات دنیا بر ازانم تمرینی برای این. قل بفكر دم بري الله جل وعلا بري الله باشي مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام شقته شو ممدح إبراهيم عليه الصلاة والسلام دار القرآن داريت بتش شق قرباني ممكن بري الله بتش شو برش مهم نيس بذات الله بالاتر از همه چیزه الله حتما راضی باشه دنیا را نمیخوام بچه را نمیخوام کلی سال از عمرش رفته بچه دار نشده حالا در سالی الله بهش ای داده الان اون را میخواد ازش بگیره بچه‌را بگیره ولی ایمانم نگیره خب این چی میشه انسان انسان بر ایمان پرورش پیدا میکنه زمان کسی هم فوت میشه بیتابی نمیکنه نسبت به قضا و قدر الهی اعتراضی نداره به اون درجه سب میرسه والله يحب الصابرین الله صابرین هم دوست داره اون نکنید از کجا؟ از احسان به کجا رسیدی صبر. ولی خب تو احسان نکنی اون درجه احسانو نداری باشی و تلاش نکنی برای رسیدنش و ابزارشو نگیری از همین حیا و دیگر ابزاری تو نمیتونی به درجه صبر رسید و کل اون پیانبرانی که مدح شدن از اولو العزب اولو العزب برای چی هم کل قصه و داستان موسا دارید در دا قرآن میگه چیه قصه مدرسان موسی عیسی و السلام؟ هیچ کسی زجر رو شکنجه ندیدن از خلق الله جل و مثل موسی در مقابل قومش و قوم فرعون چه حت اعذار دیده؟ هستم بنی اسرائیل که این براشد زحمت کشید مساعدة الصادق والسلام قولوا العزم من عزمتشون بالاست صبرشون بالاست بیتابی نمی کنن شکایت نمی کنن نسبت به قسمتشون و رضایت الله جل و علا بردلشون چیره شده مهم الله جل و علا که ازشون راضی و خوشنود باشه حیا یک گوشهش ما گفتیم در مقابل مردم گوشه دیگر خصوصا به قاهرانمون برمیگرده که برمیگرده به قسمت اولش قسمت اون حیا در مقابل الله جل و علا طرف حقوق مردمه زیر پا گذاشته جرم و جنایت برای خودش یادداشت میکنه تو پرونده اعمال خودش سبب شده یک موی بیشتر نیستا یک دستی تو آرنج بیشتر بیرون نیمده یک چادر نازکی بیشتر نیست یک کف یه پای بیشتر بیرون نیست سبحان الله رسول الله صلی علیه و سلم زنی نیست به بزنه بره بیرون مرد نام حبوی به مشاویش بخوره الا زنا پای اون زن نوشته میشه شری جرمه زنا و ان العين تزنی وزناها النظر و ان السمع و وزناها السمع چه زنا میکنه کنه مرد نا محرم نگاه میکنه زنا براش نوشته شد بی حیایی بی حجابی حساب شد زنا براش نوشته بشه با آرایش اومده موهاش بیرونه زنا یاد داشت کرده برای خودش غیر از اون عطرش شرم از الله که نداشت حیا از الله جل و نداشت که این ها داره انجام میده که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایه صنفان من اهل النار لم اراهما دو سنفه هنه گروه هنه از جهنمیان که من ندینم سنفه اولی مردانه که شلاخ زنه و الى آخر مردانه کاسی القلبی که یاد میکنه از سوه ست و سلام که الان که فقط میخواه مردم سرکوب کنه لازمیست شلاخ باشه باشه کنجه با دار زدن و الى آخر سنفه دیگرشون نساء کاسیات عاریات لباس پوشیدن ولی این کار نپوشم ملعوناتان رسول در حدیث دیگر میفرمایند لعنهن فانهن ملعونات اهل جهنم ملعون ماث روسهن کاسنمه البخت المائله موشنو مسکانو چطور بالا آوردن الله جل وعلا در قران میگه الا يضربن بارجلهن خشبه زمین نکوبن با دمپای پاشنه بلند پاشو میکوبن بر زمین ولتتبرجن تبرج الجاهليه الاولى مسی جاهلیه دیگه آرایش نکنید آرایش میکنن خب کجاست حیا کلی زنا برای خودش نوشت با انواع زنا اون بو به جای خودش یک جنابراش هست اون دیدن هم کسی میبینتش هم یک زنای دیگه برات نمیشه میشه تو شریک جرمه این همه گناه میخوای چه کار بکنی جلوی الله و جلو علا بعد میخوای دعات مستجاب بشه که مرتدی شه به قدری که بشین حالا یک شب نماز بخونی که الله گناهانتو ببخشه و دعاتم مستجابت بکنه نه چنانچه رسول الله صلی الله علیه و میفهمه در اون شخصی که تو سفر محتاج نیازمند اشعث و اقبره و جلیده و لباسش کثیفه تو رزگرد خاکی انی استجاب الہ رسول الله صلی الله علیه و آله فرمایان انی استجاب الہ چطور الله استجابت بکنه مطعمه حرام غذاش حرام و لباسو حرام لباسش حرام انی استجاب الہ خب چطور با چه روی این توکل دارک الله هم دعاش بکنه تو با این همه بیبندباری این همه زنا در پرورده اما التوقع داری که هم الله دل اولاد دستتن پور بر بگردونه مریضی تو خوب بکنه بچه تو برات خوب بکنه خب خودت خوب نبودی چطور الله برات توقع داری خوب باشه خودت خوب باش تا الله برات خوب باشه تو از الله حیا کردی توا قدری الله جل و علا خير و رحمتش برات باز بکنه نه در خير برای انکه مستحق خیره مستحق رحمته بل الله يحب الصابرين ويحب المحسنين تو که صاحب کاری در مقابل گناه صبر انواع داریم هوای نفسته صبر باش نفس خودت حبس کن یک از انواع صبر همينه که از جلوه گناه و باز بداري این صبر الله جل میگه يقول الله يحب الصابرين صبره تو زمانی که نتونسی نفس خودتو باز بداری از ارتکاب این حرام و این جرب این جنایت این زنا و شریک در این جرب با مردانی که تو را چه شرانی میکنن آلوده میکنی جامعه رو ولی بله مستحق لعنی ناز الله جل وعلا تو ملعونی الله دوس نداره بغضت داره چون بندگان مؤمن داره آزار میدی میخوان سر نماز بیسن هزار تا چهره و تصویر تو زینشون به نمایش میاره شیطان و تو هم سبب شدی بعد توقع داری که ملعون نشی بله تو ملعونی مؤمنین را آزار دادی. بندگان الله را آزار دادی خونه های مردم را خراب کردی مرد تو بازار هر روز کل, کل بازنش فقط دق میزنی تو خونه چرا؟ مشکل اون مرده چیه؟ از صبح که میاد تو مغازه صد جور و جور زنهای برهنه را میبینه میاد تو خونه زنش بنده خدا نشسته براش تباخی میکنه کلی بوی غذا از پیراهنش میاد انگار عفریت از جن دیده تو خونه نمیخواد ریخت خانمش رو ببینه شروع میکنه به نقنق زدن بر سر اون زن بدبخت کی سبب شده همون اون جنایتکارا از اون زنان بی حجاب برهنه اینا دارن خونه های مردم رو خراب میکنن اون مرده چشش چش سیر نشده سیر نمیشه شهوتم گرسنگی ه نیازه شاید اون مرده جبران نشه شاید اون مرده تو خونش اش داشته باشه ولی که این زنا تحریک میکنن این زنا آلودش میکنن نکنید کنید یک گناه معصیت بی حیایی یک گناه معصیت بی حیایی ولی کار به کجا میکشونه چقدر طلاق میاد چقدر بچه‌ها بی خونمان میشن، بی منزل و جا میشن، بی پدری میکشن. همش هم سر چیه؟ سر زنای برهنه، بعد میگن که چرا شر حرام کرده؟ خب الله جل به خیر خودت نگاه کرده، ای خواهر. میگه دوست داری خونه خودت خراب بشه؟ خب دیگران دارن همون کاری که تو الان میکنی، خب دیگران با خونه و زندگی تو دارن میکنن. دیگران هم دارن به جون زندگیت میافتن و شهرت رو دارن میگیرن. تو که دوست نداری برای خودت خب برای دیگرانم دوست نداشته باش، بعد میاد داد و بیداد میکنی، ها شوهرم فلان کرده و فلان کرده و درد دادگاهی ایستادی نوبت گرفتی برای خودت برای شکایت و فلان تو شر نکردی از الله جلب الان شرم از بندگانی الله نکردی بعد تو خود الله طرت بکنه تو خونه و زندگی نه نه خوونه برای خود گذاشتی نه خوونه برای دیگران کم تو دی رو تودان ب سر مردم کردی ب سر خودت میاد توقع نداشته باش سر بههنه بری بیرون خود را به نمایش بذاری و اورت را به نمایش بذای بد شب راحت بخوابی با خیال راحت و آسوده شوهرت بیاد بهبع و چچ هم برات بزنه نه پیش الله جللب ال. گذشت هست ولی هم سد جای خودشه. الله جل و اگر کسی به کسی ظلم کرد حق الناس رو گذشت نمیکنه. حق خودش الله میبخشه. ولی کل حق الناس تو چشم مردم و دل مردم رو آلوده کردی با اون بی حجابی بی بنده حق خودش الله میبخشه. ولی اون بنده مؤمنی که اومد نماز بخونه، اومدی تو خونه‌اش سنگ اندازی کردی با بی حجابیت؟ الله جل و حق اون خواهر مسلمانی که تو خونه داره رنج میبینه از اون شوهرش به تو حق اون زن راستو خواهد گرفت. الله جل و علا حق الناس نمیشه. نه گناه به خودم نه به خودت نیست تو این مسائل ما مردم مساسبان شل شدیم چطورشون باید بگیریم با نرمی نمیشه این گناه ها رو معصیت رو از کنارش بگذریم در این مسائل نیاز به جدیته نیاز به شفافیته نه این حدیث توش لعن مده چرا بگیم لعنان بله رسول الله صلی الله علیه و آله گفتن ملعون و بر سر چشمم قاهیمم گفت لعنم خواهم کرد بله ملعون چرا ملعون نباشن آسایش از مردم گرفتن از زندگی مردم گرفتن هر کسی بی حیا شد این بی حیایی در حجاب گفتن همین بی حیایی در حجاب میاد تو اخلاق فحش میده دشنام میده نمیدونم از غیبت کردن از تهمت زدن همه بی حیایی ها، مثلا با کمال بی شرمیش اومده تو مغازه مثلا به فرض میخواد یه چیز خرید بکنه میخواد مخ طرف را بزنه خودش هم میدونه با مکرش از یه طرفی آرایش کرده از یه طرفی دیگر الله جل و علا میگه ولا تخضعنا بالقول و من الذي في قلبه مرض. فلا تخضعن بالقول خضوع بالقول نکونید نرم و نرم حرف نزنید از هم نرم حرف میزنه بی حیایی بی حیایی کار به کجا میکشونه اون مردم دل داره که اون مردم انسانه شهوت داره الله غریزه شهوت داره ذاتش گذاشته ربات که نیست که جلو اون زن ایستاده که و از هم زنای مکار اینجوری کاری میکنن زنای مکار ملعون چی کاری میکنن بله ملعون و مکار با عاقبت مکر به خود شخص برمیگرده وایم کور وایم کور الله الله خیر الماکرین فکر کردی مخ مرد رو زدی عرضون تر به اعداد حساب نکردی نه والله گوشت جونت نمیشه عذاب جونت میشه بسی زن فکر کردن حریفن فکر کردن خیلی ماهران خیلی بیتونن مخ بزنه نه والله این مخ زنی نیست آخرت تو سوزندیه ای خواهد فکر باشه باش 358 حدیث نوام الترمذي رحمه الله مجيات حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن نبي سعيد الخضرية رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه أبو سعيد الخضرية رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دخترك دختارة باكرة عزيك حياش كم ماربتش نديدة حياش مشتاربوت فرو نبوت در تماس گرفتن، در پیام دادن، در آزار دادن و وقتت گرفتن بی خدا، علکی، میخواهم حالت بپرسم، میخواد فلان بکنم خاصه ای دارن، طلبی درخواستی یا شایدم نداشته باشن بین خودشون الله جل و علیه هست یه جایی هست مزاحمته، یه جایی هست مزاحمته تو برای عبادت الله آفریده شدی این که دنبال کسی هستی که بار غمت رو به دوش بکشه بله میخوای مشورت بگیری، بله بعضی دیدی مثلا زنگ میزنن خوصا این تو خوهر ها زیاده میخوام بار زندگی حتی برادران ها میخوام بار زندگی رو دودش تو بندازن با پرویشون پر میان یک ساعت دو ساعت وقتت میگیرن بعد آخر کار میگن ها اینم مشورت فلانی بمون داد و اینم زندگیمونو خراب کرد اینم فلان و فلان کردم میان یک ساعت وقتت میگیرن کل بار همسرم هم این کارو کرد همسرم اون کارو کرد کل غیبتش هم میکنم حساب مشورت داره تو یک حرفی تو یک تعاملی یک جمله بسنده میکنه نه اینکه بیای حرف دلت رو بزنی و به عنوان درد دل سینه‌ات رو باز بکنی چقدر بودن از همین الا خوشم روانشناسا که مردم به عنوان درد دلم بینن پیشون به خاطر اون حس روانی و دلتنگی چقدر شده شیطان فریبشون داده اونها را در دام عشق عاشقی نسبت به اون روانشناس انداخته یا زندگیشون با شوهرشون خراب کرده رود باز شده نه؟ رود باز شده هرچی دلت میخواهی میخواهی بگی خوزن دنبال کسی هستی که بتونه درکت بکنه به قول خودت رود هم بازه شرم هم حالا این مرد نامحرمه. حرف باش نظر منه روان شناسه انسان باید دنبال اتبابت باشه دنبال مشکلش باشه حل بکنه غافل از اینکه تو برای الله جل وعلا آفریده شدی برای عبادتش مشکل گشا الله جل وعلا هست تو رو به الله جل وعلا در تحجدت رو وردی به دعا و مدی به خلق الله نیم دی رو به الله بزنی رو به خلق الله داری بزنی تو میخوای چطور الله مشکلات حل کنه پرویی فقط تو این نیست که تو بیای از من بپرسی موبایل چند خریدی؟ از کجا آوردی؟ پولش از کجا آوردی؟ فقط پرویی نیست نیستا. این بلی پرویی واضحه، همه میدونن. درآمدت چیه؟ چقدر پول داری؟ چه کار میکنی؟ خرج زندگی از کجا میاری؟ این یک نوع پرویه که آشکار همتون میدونید. و این حس فزولی که بعضی از متاسفانه توشون هست که این از اسلام نیست، از ایمان نیست. من حسن اسلام المرء تركم ولا يعينك قبلا داشتیم. از زیبایی اسلاممون، ایمانمون، اینی ایمان ایمان ایمان که چیزی که ربطی به من نداره دخالت نکنی وقا خرجا دخلش چیه چند تا بچه چند تا همسر چه زندگی از کجا میاره چی ورده چی خریده این سنگندازهی تو زندگی مردمه این پر رویه یک نوع پر روی روی حیا روی شر داشته باشه از مردم ربطی نداره به تو یک روی دیگر بعدت حیا نباشه میاد گدا میشی پیش مردم دیگه عرقی نداری به خاطر همین روز قیامت یکی از چیزایی که هست، از عقوبات ها برای کسی گدایی میکنه مال مردورا رو میتلبه روز قیامت میاد یک تیکه گوشتم تو صورتش نیست که زشت باشه چراش در روز قیامت ولی سفی وجری مضغه لحم میاد روز قیامت گوشت تو صورتش نیست بی ابروس بی آبروست آبروشو حفظ نکرد روشو رو حفظ نکرد یه نو دیگه بی آبرویی که من گفتم که پنهانه که ما نمیدونیم روی حیا حیا نداره از مرد قصان زنایی بیشتر پیش میاد براشون شرم نداره میاد در دل با این مرد با اون مرد و ارتباط نامشرو برقرار میکنه و جایی هم تو مردان پیش میاد جایی هم تو مردان پیش میاد والا تو مردا کمتر آره نمیدونم این آلو دیگه چقدر باشه ولی حد و حدود داره حتی صحبت کردن پاسخ دارم من که خودم هستم یعنی خانم میاد میخواد سوالی بپرسه پاس میدم به همسرم میگم قانون با خانم زنا بهتر میتونن با همدیگر تا کنن. ما مردا مکلفی نیستیم کی است که در امان از فتنه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم زنده بود اصحابم رضوان علیهم به اوج ایمان رسیده بودند ولی با این وجود خطاب به چی میگه لا یتخذ احدکم علی النساء نزله زنا نریدار نشینید ما زنا ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما از ما ما ما ما ما ما ما از ما ارتباط ممنوع شدیم ارتباط ما ما ما ما ما ما با اون زن بشینه بیحیا میشه حس زنانه بهش دست میده حتی ادا اطفالش اون نحوه صحبت کردنش حرکاتش هم میشه حرکات زنونه حرکاتش هم میشه زنونه تو مردی مرد باید قیومیت داشته باشه مرد باید قوت داشته باشه شهامت داشته باشه مرد مثل زن نیست مرد اهل کاره اهل بیرونه ولی اگر تو خونه نشست با زن نشست حس زنونگی بهش دست میده حس دنیا دوستی قوصا زنا که دیگه نماد دنیا هستن و برای این دنیا آفریده و خوشی و لذت آفریده شده و دنبال لذت ها و خوشی ها هستن تو اگر تو خونه نشستی این خوب به این زن بر اون مال دنیا و لذت دنیا بر تو هم چیره میشه اون حس ایمانی از تو گرفته میشه فریب نخور فریب شیطان نخور فریب اون خوهری که مظلوم نمایی میکنه میخواد درداد دل بکنه باهاد نخور نگو من یه مشکلش حل میکنم نه خودتو تو مشکل میندازه غیر از اون که این عدم حیای تو سبب میشه که شاید جایی هم پات بلغزا به خودت مغرور نباش پس رسول الله عصد و سلام حیاش خیلی زیاد بود تا جایی که اینجا داره صحابی ابوسعید سعید خدر رضی اللہ عنه تشبیح میکنه به حیای یک دختر که تازه به بلوغ رسیده یک دختری که نامحرمی ندیده مثلا خاستگاری براش بیاد چطور مثلا روشو میپیشونه یا می خجالت میکشه من ازدواج نمیکنم روش نمیشه رسول الله عز و جل بود کسی باش حرف میزد شرم میکرد ازش می ایستاد لبخندی میزد زد حرفشو میشنید هیچ وقت روشو به کسی نمیزد کمکی از کسی بخواد حتی از همسایرانش خونه منزل اگر میومد اگر لباسش پاره میشد یا کثیف میشد خودش میشست قبلا داشتیم دیگه خودش میشست باک میگرد خودش میدوخت لباسش رسول الله علیه و صلی الله علیه و سلام نمیگه قم اینو عایشه بیار همسرم برام بدوز روش میخواست می خودش خدمت خودش بکنه اون کاری که از پس خودش بر میاد وكان اذا كره شيئا عرفناه فی وجه اگر چیزی دوست نداشت رسول الله صلی الله از چهره مشخص میشد یعنی میدونید سیم اون لبخندی که نمیزد یعنی دوست نداره لبخندی که میزد میدونیم که دیگه خوشش نمیاد از این مسئله یا از این حرفی که داریم میزنیم از چهره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میدونستیم کمال اخلاق طرف هم صحابه که درد میکنن و دوان لا علی که رسول الله صلی اللہ خیلی براشون مهم بود. اینجا اخم گردا. از این چیز خوشش نمیاد. از این نحوه حرف زدن یا از این رو رفتار خوشش نمیاد. خلاص. تماشا رفت. دست کشیده. یعنی کافی بود رسول الله صلی الله علیه و آله بگه نشانه منافق چیه؟ دروغگو بودن، خیانت کردن، غدر کردن، عدم وفا کردن. بعد کافی بود که بگه بهشون. خوشم نمیاد این صفات منافقینه. آیه المنافق 3. خلاص. تماشا رفت. میدونن سر رسول الله صلی الله علیه و آله از این صفات منافقین بعدش نمیاد. تماشا رفت. از یه طرفی حسن ایمان خودشون، از یه طرفی هم حسن تعامل رسول الله صلی که بهشون یاد بده و این چنین تربیتش رو میکنه آخرین حدیث امروزمون 355 نهمین حدیث از شمال الله میگیت حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولا لعائشة قال قالت عائشة رضي الله عنها ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط حدیث زیفه در اسنادش چنان داشتیم این مولای عایشه بردش بوده آزاد شده کیه مشخص نیست ما حدیثی که ندونیم که کی, کی به ما گفته قبول نمیکنیم حدیثی که ندونیم رابش کی قبول نمیکنیم حدیث ضعیف ما قبلا داشتیم چرا که در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله حدیث خوده عایشه که میگوید من و رسول الله صلی الله علیه و آله با هم در یک ظرفی تشتی آبطری می‌کردیم در یک حموم با هم دیگر آبطری می‌کردیم اما اینجا این حدیث که میگه که امه عایشه گفته من گاهی شرمگاه رسول الله صلی الله علیه و ندیدم یا چشمم به شرمگاه رسول الله صلی الله علیه و گاهی نیافتاده این چیه این قابل قبول نیست هم متنش منكره هم اون کسی که سی روایت کرده مشخصی کیه. و برخلاف این اون چیزی که داریم رسول الله صلی علیه و وسلم بالاخره هم با همسرش و خانمش داشته یه طرف از یه طرف دیگر تو حمام با هم دیگه رابطه نمیكردن قصشون انجام میدادن و هیچ مشکل مشکلی نشری داره و نه هم عیب و نقصی هست در طرفین که بخوان تن هم دیگه رو ببینن زن و شوهر بله مرد بی حیا باشه با شورت کوتاه بیاد بیرون و ران پاش جلو به نام بیرون باشه بله عیب ای است این بی‌آبروییه یا زن عورتشو بیرون کنه بله ولیکن همسر با همسر دیگر اون حیاه معنا نداره سبحانك الله وبحمدك سبحان الله وبحمده على محمد و آل محمد